بسم الله الرحمن الرحیم والحمد و الحمد باللہی رب العالمین و صلی اللہ علیه و سیدنا رسول الله، و آلیه القیبی و قاهری المعصومین و لطف دارمت و علاق داری مجمعین اللہ من فرد و جمیع شبیلین و حمد و رحمت کیا و رحمت و حمد در مرحب سهر همونتا مطالب خیلی زیاد دارم کنیم آشورت جمعشم بکنید اونم باز طول میکشه مرحوم صاحب وسائل قدس سرور شریف الحمدلله خوبیش که در این جهر این سبابی رو که تقریبا نزدیک به همه و گفت که مشابه هم با قدر ها این سباب رو در عباب مایو تصابه خشت سر هم امرده در باب 24ش ما در نجوم در نجوم تابعاً صحبت کردیم باب بیست و پنجش را جب سهر که امروز داریم دیروزه امروز صحبت کردیم و باب بیست و باب تحریم اتیان الارراف و کهانه و قیافه علفه خیافه رو خود در روشیخ مستقلم میاره در مکاسب علفه ببخشید ببخشیم گفتم گفتن چارتاست باب بیست و هفتشن. باب حکم روغی روغی این روبیه یا به اصطلاح تری در چشمن چشمند همین نوشته های یا روبیه بیشتر به کلمات مسجع و مغفایی میکن که میخونه های دوان فسیمون چه عجی میم و اطلاتر. یه تعابر اینجوری رو روغیه میگفتن که اون روز توضیحی دادیم بعد میشاله چون یعنی ما درشال در این بحث خودمون. این چهار باب رو باید همه رو بخوریم باب, باب نجومشی گذاشت البته در باب نجوم یه روایتی هم به سه داشت اگر یادتون باشه برد در شماره هفت از اقواب مار... همون باب 24 که مال نجومه صفحه این چاپ آلو بید که من چپ مرحوم های رمضانی که من دارم شماره هفت مرحوم شیخ به اصطلاح شیخ وسائل نرمی میکنه از خصال شیخ صدو دفر کردیم انها یعنی از ابن الولی را انها به ابن الولی برمیگه ده انصفا ان حسن ابن علیه کوفی ان حسن ابن علیه کوفی هرس کردیم از بزرگان و اجلای اصحابه ایشون نوی عبدالله مغیره معروفه این اصحاب ابن ابراهیم که احتمالا ضعیف باشه این نصر قابوس قابوسی شاید بشه قبولش کن آل سمیه تا عبدالله علیه السلام یه بود ملون، ملعون والکاهنون ملعون و ملعون والمهنیتون ملعونه و من آباها ملعون و آکر و کسبه ها ملعون این از هم مرحوم شیخ صدوب در کتاب خصال اوزه ما یه توضیح ها تروز که نرمز کردیم که خیلی از و صدوب در کتاب های با خود ما در دویش اوزه در یکیش و در فقیه نیه این نقاط فنی داره سال های توضیح داریم حالا حال توضیحش نداریم بعد این روایه به این معنی خود محمد صدق در خصال رو بوده ولی که در کتاب فقیه نهب نکنه و باز داره که در شماره هشت و قال علیه السلام حل منجمو کر کاهن و کاهنو کر ساهر و ساهرو کر کافر و کافر و گرنا این رو تو فقیه توی مرزای مخواه توی خصال رو بوده تو فقیه ما احتمال دادیم که شاید اون محنی که مفصل بود صدوق مشکلی داشته ولی ازا اون رو در کتاب خقیه نیمونده من توضیحش رو سابقاً عرض کردم این روایت به باید نصد نقابوس کرد آن خوندیم این کتابی که دست من هست این چاپ مرمای عبانی در باب کونزده حدیث شماره چهار صفحه 85 اینجاست ببینید این رو کلمی اینجور رو بوده ابو علی استادیشان احمد بن عزیز اشعری خومی از بزرگان از حسن که هم مثل همون حسن یکی میشه. ابن ابراهیم اند حسن ابن قابوسی از یکیه تماما آم سمیه تعبا عبدالله السلام یقول و ملعونه ملعون منحکر کس رو که در کتاب مرحوم صدوح به اون مفصلی بود دیدی در کتاب مرحوم شهر توسی این مردی چقدر مختصر شده راوی هم یکیه در صد نخابوسه بعدش هم یکیه بعدش هم یکیه همش یکیه این حالا یک شرگی داره چه یک تلخیص ها و تفتیل ها در برایه هم که این جاش دیگه به هر حال این یک روایتی بود که سابقه خوندیم. برگردیم به روایاتی که بیروت شروع کردیم. روایت بیروت از باب 25 در باب سر بود. و حدیث شماره 4 یک تکعی از ابن اخوار رضا را ذکر این اصنات تشکیه امام احکمی تفسیر امام اسگری خود امام اسگری بر اساس روایت بعض دستقه هاش اینجوریه نمیشته اندر امام الاسکری حسن الالی انا ابیه علی ابن محمد انا ابیه محمد ابن حلی هنه ابیه رضا هنه ابیه موسف نجربه چون اسم حضرت رضا هست توی اون اخبار رضا برده بالله تأثیر امام الاسکری رو کلن توی اون اخبار رضا نورده اون جاهایی که امام برگرموندن بعد در رضا توی اون اخبار این صدر این که اون اخبار برد و باز در کتاب اون اخبار از آرش خماریف که اینجا علي بن جعفر نوشته، علي بن جعفر مازه نیست، علي بن محمد رجعه. دیروز هم ازش کردیم، ما هم صبر. یک جای دیگه در کتاب اون یون اخبار از آرش، صفحه 124. در زیر دیگه صفحه 124 میگه که ها در حدیث عربون از این راه نیست من یوزش تو این راه این راه نیست. حاضر حدیث قریبون من طریق علی ابن محمد ابن جهم نسبیه و بغضیه به اداوتی و علبه علیه مستان ظاهرم صدوق اشتباه کرده یادرم ولی علم و اندالله این علی ابن محمد ابن جهم نمیشنستی اون علی ابن جهمه من دیونی ظاهرم اینطور که اینجا خودم نوشتم بله ساجی نوشتم غلب سامی درسته خودم تو نصف خودم ساجی نوشتم عن نیسام است اصلا در بحثش نوشتن که اصلا محروف بودن در نیسام معروف بودن به بغض به درگیرن امطاره گویا که کم چیزینی که بغض شده خود این شخص هم که ادبیه جردی از خبسای روزگار این علی بن جمع با متوکل انباسی است رفیقم برادر رضا و به سید محمود نداره اشتباه کرده برنسامو این شاعر داره و حتی ادعا شده که این از کسانی که تایید می‌کرده تاکید می‌کرده متوکل در تو اون جنایات جام سیدو و انجام می‌ده مسائل سیر و شاده و مسائل هر اندازه‌ای در طبقه بزرگی شیعه این موضع علی بن جناده و نوشتم شخص کثیفی بوده در مواردی داشت در یک عبارت داره که تو خاطر اعمالت با علی بن علی صورت بدی به هر حال این آیه در ترجمهش اینجا ظاهر معنی شرفتن رو اشتباه کرده علی بن محمد بن جهم این علی ابن جهن سامینی است شخص دیگری. است به با حدیث شماره چهار و شماره پنج چون این دو سا حدیث هر دوشون راجع به مسئله به استداق آیه مبارکه هستن به بابل حاروز مارود راجع به حاروز مارود خب این آیه خودش احتیاج رو بحث داره من جدارگانه اون رو بحث میکنم فیلن این دو سبب این حضاست من زریفه قابل احتمالی است فیلن دفته با ترجمیم تار راضی میکنیم اما در نتیجی گیری دید نهایی متعرض میشیم و هر حال راجع به این آیه مبارکه یه جهاد تفسیری هست که اصلاح حیرت آیه چیه حاروچ چیه ماروچ چیه و چی لحظی هستن ایوری هستن کلبانی هستن و حقیقت اون قصه حاروچ و م که ظاهرا ای مبارک چیز یه بحثی اینجوری ما داریم خب تفسیری در وجود تفسیری داره میشه مراجعه کرده خب خود فواید خودش دو بحث فهدی هم واجبی این آیه هست که در سر اصطلاح نه ما اهل سنت هم به این آیه تمسک کردن هم ما هم اهل سنت این آیه مبارکه در دو جهت من انسترن اولاً دست وقتی تقریب کلمات شیخ را عرض کردم در وقت سه ما دو متخصه شده، ما فراموش نکنیم بخش ما در دو تای که حقیقت سه یکی هم گفت مو یکی موضوعی که گفت که به موضورش نطع مهم میشین سه واقعیت داره یا خیااته. ازپی مسیم که سر واقعیت نداره خوون گفتیم نکنیم واثشون گفتیم که معروم استادسه رو واقعی نمیزنیم. لکن ادهی دیگه احل سنت نمیشد بحث سه دارم اگه فهمشون ادهی از اون سه واقعیت داره و این طور که واقعی نباشه و بس... خب جایی دیست هم سو به همین آیه کردن اونایی که گفتن واقعیت داره هم به هم آیه که این بحث دیگه اینی که آیا سرکی نفسه موجب حرمت هست یا نه و بالاتر از موجب کفر هست یا نه اینشانا متعرض میشیم اقوال علمای آمه چون علمای آمه هم مختلفه ادهی گفتن کفر میاره ادهی بختن نمیاره ادهی بختن, ادهی بختن ادهی شده خود این آیه مبارکه ظاهرش اینی که کفر میاره و ما کفر سلیمان ولی که نشهتیم کفر رو ظاهرش اینی یکی از عدلی که اهل سنت ذکرند بذات سحر موجب کفر که من در بحث سالان اشاره کردم یکیش همین آیه است و این آیه مبارکه غیر از تفسیدی و واقعی خودش دو نکته در ره ما کارساز الان این در فقه اسلامی یکی درباره موضوع سحر و یکی هم درباره حکم سحر به لحاظ کفر آیا صاحب کافر و مرتد البته کافر غیر از مرتب چون بعضیشون گفتن کافر هست اما مرتب نیست این هم دارم و این کارو چه حرقی میکنه اینشان در بخش و حکمتی میرسی توضیحات کافیش ده درست میکنه پس سبک راجع به این آیه مبارکه جداگاره بحث بکنی در محل خودش چون هر داره والد ارزش سندی ندارن خود آیه رو بررسیبار بکنی حدیث شماره شش و فرخصال بعد از خصال مرحوم شیخ صدوق قدس الله و سره، ام محمد المروانی من اصحاب طالقانی از مشایخ ایشان برای شارز الله علیه نمی‌شناسی می‌شود. علی محمد یحیی بن محمد بن یحیی بن محمد ابن صاعد احتمالاً از مش اهل سنت باشه. ابن ابراهیم جمیل ظاهراً از همان است. عن معتمر بن سلیمان این دیگر بزرگوار شیعه دیگر یعنی رثما از, از, از, از معتمر بن سلیمان از اجلا رحمه قال اینکه موضوعش اینه قرأت على خزیره بن میثره عن ابي معروف برده ابی برده پیش اهل سنت شیعه پسر شخص اشعری معروفه و موسى شیعه تشیعی ابو برده اشعری است عن ابي موسى ابتدائش این حدیث ابو موسای عشقی مران در مسابر احل سنت هست این شبه در جایی که ما میرسیم به احل سنت نقد رو این حدیث ابو موسای عشقی در باب شد؟ حدیث اینه سند اولش شیخ سبور و سبور در مصاده ایشان بعد دیگه میرسه به مشاهق عامه یکی دو تا مشکه بیره مشکول داره بعد دیگه میفته توی مشاهق آمه توی عصانید معتبر آمه حالا چه زمانی بحثه ای صادر کردم الان دیگه چون دیگه چون روا زیاده خیلی ارزش نداره اما یه صحبتی ای کردیم که, که روایاتی که ما از کتب امانه در مصادر ما آمده چون در مصادر متعدد ما آمده مثلا در کافی ابن اسفهان آمده مشهور رو بگم در کتاب تهذیب بیشتر آمده فقیه هم آمده ما اونقدر زیاد نیست مرحوم صدوق از مشایخ از در کتب غیر فقیه زیاد ده. ترامیش که بیش از همه ایشان داره خصال و ادار شراعی نها زیاد داره از روایات عامه، معان اخبار رو زیاد داره از روایات عامه. امالی شیخ هم زیاد داره امالی شیخ مقید هم زیاد داره خود شیخ توسی هم در قده از در تحضیب داره استفسار کمتر در ما داره قرازم موقعی که خیلی مهمه غالبا احادیسی رو که ما داریم در ما از عامه یا سندش یا متنش خرابی داره نمیدونیم چرا اسم جابجا شده حذف شده سخت داره سند خراب شده متن خراب شده جایی اوقات مثلا من کافی صفحه کاپی میزنم چک کنم اشکال به صفحه وارد باشه حالا مثلا حدیث در کتاب مثل بخاری هست وا خیلی عجیبه سند سند به همون سان پیش ما اومده اسم بخاری نیست داره جابجا ده چه سند اخر صفحه مثلا دوست واسه سند هست ماتنشان که بخاری هست. لكن هم سند اساسا ما خراب کرده هم مرضی این میگه که لو عزیزه اونا هم همین کارو کردن تو اونا تو مصادر درجه اولشون چند از ما دارن مصادر درجه 4 دارن ما حتی از مشایخ ما دارن از بزرگان ما دارن زیدی ها مقصد این عبو طالب هست که از ائمه زیدیه ایشون زیاد دارن از مصادره ما از اجه ببینی که از کتب مهم دارن برقی داره صفار داره تصریح میکنه ما اما اون به اصلا در مسادر ما نیز نه خیدهش. نه ما یه مدت استقرار کردیم اونا نه از مسادر ما که در مسادر ما نیز از برقی نه که نیز اونا غالبا یک علت مشترک جهنه بوده نه ما درست مشاه خود رو میشنخیم. نه اونا درست مشاه ازماری شاهد ظاهرن نه اونا به احات و ما نه ما به داشتن نه ما احات اونا هم مشترک علی یعنی خرابی، اونا هم خرابی دارن ما هم خرابی داریم. اونا هم وقتی از شیعه نهرمون خراباتی میکنن، ظاهراشون مشایع شیعه نمیشناسن. و مکنه ها هم خراب شده، ما هم که از اونها نهرمون، حتی از کدهای مشهور به تو بخاری، نه از بخاری مستقیماً نه, مستقی نه میکنه، نداره. توضیحاتی توضیحاتش باید به یه ارج میخرن. یه علتی و توضیحاتی و تاریخی برای اینجوری داریم. و هر حال این نکته عرض کردم که بگم این روایت در کتب اهل سنت تو احمد نه همبل و تبرانی و ابو یعلا اینا آورده از ابو موسا من سلاست اللایت خلون هم جننه. مدمن و خمرن و مدمن و سحرن و قاط و رحیم ما الان روایت ما امدارت این روایت هم در خصاله هم در کتب اولی ما نیست در سه های محروف ما رساله کتب اربعه نیست مثلا همینجا مدمن سحر خیلی عجیبه مدمن کسی که عادت داره انجام ده تکرار میکنه که زیاده داره خیلی عجیبه مدمن سهر در کتب احضر سنه این به جای مدمن سهر مؤمن سهر داره به چه مؤمن مؤمنان داره این کلمه اکتا که ها خراب شده اون مؤمن با واق بوده در مصادر ما با دال آمده همیت سنبال اوناست یه واضح مکرز عبونسه عشقی و پسر عبونسه مشایخ مشایخ احضر سنه معلوم هر حادث ما نیز هر در بزنیز. و یکی هم مصدقون بسه مصدقون بسه در مسادره آمه اینجا به جای مدمنسه مؤمنان بسه مصدقون بسه و خیلی میبرم های مدلو اونی که ما آوردید چون مدمنسه که کسی که خودش درمان صحاری بکنه وق به استرس شوند روایت در که من مشاء الهی کاهنه تصدق هم فقط کفره به ما نزله علی محمد صلی الله علیه و آله من ظاهرا مراد مدمن نباشه مراد مؤمن باشه کسی که کاری صالحی باشه که در روایت هم داریم شباب البته این بحث آینده است چون این, این باب آینده بله یعنی نه رسول الله احتیان العراب بلد. من عطا و صدقه هون فقط بره امم ما انزلال و آفا از درجل علا محمد صلی اللہ علیه و آمد یا مثلا من مشا الاساخره او کاهن او کذابه یتدقه هون به ما یبون فقط کتره به ما انزلالله این که من به شو ارزم شواهد با مجموعه شواهد اون مدن مصدقان به صحب بهترده مدمن و سهلی کسی که خود صحاری میکنه خودش زیاد کار زندگی دنگی و سر مصدقه سر سهل خود سهلی که سهلی که قبول داره این کاهن سهلی که بگه قبول داره ظاهر این محله اشخاله این که ما انزل الله و کتاب نه مدمن حالا یه حاله این نکاته در محرفت الحدیث و ملاحظه بفرمونه که فوق العاده لطیف حالا راجع به روز آمنه بعد این باید این روایت در اونجا رو ثبت عبدالله مرحوم عبد الله در جعفر همیری در قوربل اسناد عجبادر روز، اوداشه همیری داریم که ارثشون مثلا نوشته مأروز داره که قوربل اسناد این مال پدره که عبدالله الله بن جعفر باشه. یه ثویات همیری به بقیۃ الله داریم السلام اون مال پشره که محمد بن الله باشه. اینا باید این تکرار میکنم برای که دیگه یک حالتی ارشکازی پیدا کنه. انس بن عبد محمد جزء اجلای اصحاب اسمش ابانه احتمالا خیلی سبزه بوده بود. مثلا انس بن محمد رو سندی میگه ابانه محمد ان عبد البحری به بن این از علمای معروف اهل سنت اهل اصلش مدینه بوده قاضی مدینه بوده برخا از قریش ما از از بزرگان اشاعه تراول اول عقد حساب میشه هم میگن امام صالح مادرش بزرگی هم گرسید و هر حال ایشون رساله ای رو کتابی رو مجموعه احادیثی رو از جعفر محمد و از غیر جعفر محمد هم داریم شما در میان آمن هست اول بختری از جعفر محمد لکن اتفاق کردن که این کذابه یعنی دیگه یک نفر هم نگفته که این آوه اکمانا صادق باشه من که ایب درگیارم از کنیم در کتاب بغداد داره که اصلا شبها بیدار بود برای بحث جعل حدیث می‌کنه می‌رسه نه چهارش پوشان مشکل جعل حدیث بی, بی اطلاعم نبوده یعنی انصافاً جمله مرد مطلعی بوده قاضی آموزه قاضی هم چیزی قاضی قضاتم نبوده قاضی بود مد این قاضی بغداد بوده که دارالخلافه بوده عرض که جمله هم بلد بوده لازم به نظر میره از اولوام احادیث نیست کرده ما جهرش خوبه موضوعات نجوزی میگه ما عبرد همونی خیلی وزرش جهری که کرده خیلی سرده ما عبرد همونه وزره میگه چیزی که جهر کرده برای نبوده خیلی قرباتی چه این نه یه مواضیه چون واقعا این جهار نهر سنت مختلفه هست بعضشون خیلی ناشی سر مطلب سرشون نمیشه این حدیه هم نهلی هم قام من تعلمشه هم من هم قلیدن او کسیرم فقط ک این که از اون آیایات است که سر موجب کفر اصل کردم به این خود بااهلاممه این تو اون زمان دیگه این خلاف نفره بوده این هم استفاده کرده و استفاده از این سو استفاده که مادرش مثلا زوج از صادرهشکن از غیر ما صادره این کتابش هم معروف بوده یعنی سنیام داره اما میگن همشون که این جهان بوده و هر دو و کان آخر هد دارم به دیگه این انتفاق دار ایمان داره با خدا و هر دو یوقتر حدش از قتل الا انیتو اینه اینشالا تعالی شد در بحث سر یا متعرض میشه این این کسانی که الا انیتو گفتن برای همین این اشاره است آیا این کافر یا مرتبه این رو میگفتن اگه کافر باشه طوبه شغل میشه اگر مرتب باشه لا طوبه طوبه تو. این وحد دوه یختر الا انیتو بشن شد این اشاره بود. نزایی بوده که اون وقت مفتح بوده که آیا این حدش قتل با عنوان قتل یا حدش قتل به عنوان ارتضاه فرق اینه که از فرقش اینه که اگر مرتد باشه لا توبه توبه‌ت اگر کافر باشه توبه‌ت اور نه ارثانم که بپخت بکنی بعضی از کلمات قدما این جوریه ظاهر کلام یه چیز خاصی اما انسان وقتی جنب تاریخ رو می‌بینه می‌بینه نکات پشت ده سعوده و حد بو القتل الا یعنی حدش حد کفره نه حد ارتدار این بساره با اون نقطه فرات ابراهیم کوفی تفسیر خراط چاپ شده چاپ قدیمان داره شاپ جده هم داره بردن. ایشون ام... کتاب دارشتار جزو کتاب های به اصطلاح در مصادر اصحاب ما نبوده حتی اسمش اسم فراد وجود نداشته شواهد و مجموعی شواهد و ادعاهای مختلف اینها نشون میده که ایشون باید یز زیدی های کوفه باشه دیگه حالا تفصیل حالش یک جدیگه حدود مثلا باید بشهد ساله های مثلا 24 هشتاد مثلا ایشون مال این سالهاست. در قرن سه بوم اواسط بوم، در کوفه جز زیدی ها بوده بین اصحاب ما هم خیلی تفسیرش به اصلاح جا نیختاره و در این تفسیر موجود هم ایشون یه دیادی از زعاف نهارو میکنه هم خیلی مختلف این نسخ مختلفی هم داره اون نسخه چاپ قدیم غالبا هستانیش شده نسخه چاپ جدید هستانیش برگشته مثلا اینجا داره فی تفسیر انه عبدالرحمنه به حسن تیمی اینجا اینجا تمیمی نوشته، در نصف تیمی تیمی معنیلن انه ابی عبدالله انه آبایه انه السلام این از تفسیر فکری ارزش علمی خوبی نداره لیکن خب چون زمان مرحوم صاحب وسائل معروف خوده ایشون از این که نه روی تا اونجایی هم که من حالا دقیقا از آن همجوری که من می‌دونم تفسیر فراز جزء اجازات اصحاب ما هم نیامده یعنی این کتاب مثل فخر العقول جزء اجازات اصحاب ما نیامده فخر العقول هم جزء اصحاب ما مثل فاسم ای که در اجازات اصحاب ما توی اجازات اصحاب نیامده و این هم یک از نقطه است که ما به سایر وسایل اشعار داریم چون سایر وسایل بناشین یکی از کتوبی نقل بکنه که مشهور باشه و اسمش برده ولی یه طریق عام داره یه طریق عام به شیخ طوسی میگه از این طریق عام به این کتاب‌ها خب وقتی که اسم فورا تفسیر شیخ طوسی نباشه و سند بهش نرسیده باشه شما به چه سندی از این فرات نمی تونید وقتی اصلا در میراث اصحاب نباشه راهی شما برای فرات نداری یکی ایتان از ایش فورا صاحب و غلام نار می‌کنه طرفه و غلام هم در اجازه طرسها وارد نیست مونان که اجازه این موارد نقد است در ثواب وسائل قدس الله سره که ایشون از مصادری نقل میکنه که اصولاً در اجازه اصحاب نیست و خلاف مذهب خود شیعه اگر خلاف مذهب خودش امام علی عبدالله ان ابای هیچ حدیثی که طويل به رسان نه ما اهل بیت اشبنا الله من ان نكون فتانین اهل فتنه جویی باشیم یا کذابین او صاغرین او حالا دو جور شوک شده یکی نسخه فاو وسائل جنایی استجرب الله بلکه این درسه و نشو زنا که در اینها نباشه احتمالاً زیافی باشه در نسخه مفعول زیافی ذیف یعنی به اصطلاح قش و قلقش میگم یعنی این مثلا درهم مزیغ یعنی درهم مفصولیه نقره نیست بعدها ذیف معنای دروغ باطل ما اهل دروغ و بیشتر به جایی به این کار برده میشه کار برده در جایی که یک باطن خرابی داره آدم ظاهر درست دیده جربه شده مثل خش درشین جویی ریه یه رو زیر یک درستی پنان بکنه این زیاد میگن ما اهل دروغ نیستیم اهل کرکوازی و خریب و نیرنگ و سحر و فتنه نیستیم فمنکان فیه شیع اون من منهاده خسام کسی که داره یکی ای از این خسرت ها هست نه از ما و نه ما از او هستی خب این تعاویرش خیلی واضحه که معلوم میشه که حرامه داره هرمت اصلی این حالا این باب بعدی را برام میخونیم باب 26 چون من سابقه از رو کردم دین کهانه و سر و یک تشابه های قوی بوده به که بعضی را مجموع رو ساهر یا کاهن یا بیه کسا باب ششم تحریم و افیان عراق که اصلا رفتنه پیش عراق عراق کسایی بوده که ادام میکردن به اصطلاح انوز ما رن. اگر در خطب راحت دیده باشین نوشتن کان لهو رعی این رئی از رعاست رئی به معنای مرعی در اینجا این هست در خطب احلوقت هل عراق مکان الله و رعی میخبر رو میخبردون به امور رعی یعنی اینا دعا میکنه که یک جنی هست من اون رو میبینم رعی میبینم من او رو میبینم اون به من خبر میده میرفتن دنبال اینا مثلا در آینده چی میشه؟ میگه این تو چی؟ میگه ای من اینطور گفت و گامگاهی هم میرفتن دنبال و اونها دیگه میدونی دیگه وقتی کسی جامعه ر دنبال جنگره دیگه همه مشکلات حات مشکلات به همون جنگ میه که <تصفیق> صحیح و کبیر و امور رو دیگه میرفتن پیش اینها که مثلا این دختر من مثلا یا پسر من زنش بچه زاده بعض میگن مثلا مال شوهرش نیست. این نیازازو گ بله اون ری من من من گفت بله این بچه پدرشسیین مال که دی است مثلا دیگه در بچه و اممال و, و دزدی و نسبت و ناموس و دی از صیح و کپ امور بینه ها مرع این سر اینه که من عطا و صدقه او فر از چون پیغمبر فرمود شما هر نداری حتی اگر عرواف به شما گفت این بچه این نیست قبول نیست الورا دل اعتراض فر از برعن منظر الله این سر فقط از بره چون عرف کردن چون پیغمبر یه اصولی قرار داده بودن مثلا یاب آره من جیادم اینم اون نه عرواف من گفت این نیست این, این, این دوزی کرده بابا ظاهرش یگه اینه که پیغمبرتون من عطا و صدقه رو فقط در امین ما نظر الله علیه نبیه یا علی رسول الله این مراد اینه در عاق که مراجعه میکرد مخصوصا در, در اون زمان به یکجهاتی که میخوام بگم مسساائل انتصاب و نصبی ها خیلی محل ااشغال بود گفت بعد این ریه من گفتم این بچه این اسمبی خود میگه این مثلا بلان کار کرده این بچه اینه این روایت داره که شما ن رو تصویر نکنید اونچه که ما گفتیم انجام دایم. به بهسلام ما هم یه مسول تخیسی مثل از فراش، الفراش مثل قاعده سوق رو ید مسلم این اصول رو پیغمبر برای تمشیه امور مسلمین قرار داده اگر اراغ خلاف اینها رو گفت اگر انسان تصدیرش شرط خلافه این دوانت اول باق رو مرهوم شیخ صدوق به اصنادیه انشوهیب ابن واقض انر حسین بن زید انصاد رو علیه السلام یه حدیث مفصلی است در آخر کتاب در جلد 4 کتاب فخیر آمده معروف به حدیث مناهی نبی اینجا 15 صفحه 20 صفحه خیلی طولانی نه نبی آن کذا نه, نه خب خیلی که حدیث جریه آثار جری در حدیث کاملا واضحه اینجا شبهه نداره این ان الكلام ظاهرا قدر متقن از راز اون هیئت ترکیبیشه یعنی حالا چی بوده نمی‌دونم چی من همین به موقت ما اصلا نمی‌شناسم کلا توی قبلدیشون هم اصلا کسانی اصلایی که نمیشنسیم مجبوب هم نمیشنسیم بالاخره یک کسی در این وسط هم رو سند بازی کرده هم رو مرد ظاهرش این کاری کرده مجموعه یا از روایات موزه فردگر گرفته یک سندش داده هنه حسد زیر هنه صادق هنه عبیه هنه آباهی به عبارت دیگر عرض کردم. این حدیث به صورت ترکیبی جعلی است اما مفرداتش. تاریخ کی کی کیاش مختلف هستند بعدش از, از, از امام ماز بزرگی مثلاً ابوهوری رضی الله عنه مختلفه همیشه ما یک امامی از امامی مختلف از امامها، از صحابه، هاست، از سونیها، مفرداتش دیزیادیش عالی دارند. هیئت ترکیبیش جالب است، چون هیچ شاهدی به یه حدی وجود ندارد. هیئت ترکیبیش جالب است، اما از خدا جد مفرداتش نیست مثلاً این مذهب مثل مداری. انا طه و صدره بر ان ما انزل الله محمد صلى الله اینجا داریم و جای دیگه هم داریم بله علی این خیب واقع واقد رو ما نمی شناختیم سر نمیشون ابهام داره اینجا دیگه یک بحثای ثنایی و تاریخی رفیعی هست که چون وقتش مناسب نیست وارد نمیشه انا حسین بن زید و اینو خیب بن واقدی در میان اهل سنت اینه که اسم بزرشو خیب بن واقدی باشه نمیدونیم این همون باشه هست دیگه باشه اصلا نمیدونیم چیه چه خاره هستی چیش نمیدون حسین ابن زید کردیم کوچیک این فرزند زیده کوچیک فرزند زید شهید. حسین ابن زیده یعنیم دو ساله بود چند سال بود که پدر شهی شد امام ساله بود رو بزرگش کردن تضییتش کرده خیلی هم احمد تحجد و مناجات رو و رضا معروف بوده به حسین ا در حال مناجاتی نکی بوده اشکه او جاری بوده حسین زددمه اینه فران ما از زیادی از که به اسم حسینی هستند ایشون برمیگرد نصبش سادات حسینی که از سادات حسینی به زید برمیگردن و زیدم از طریق همین حسین زددمه ایگه از انصاب هم لازان همین زمان خودمون هم در انصاب در طول تاریخ و هم در زمان معاصر زیادی از سادات حسینی به این آ توصیل صریحی در پیش ما نداره توصیل صریح با من منحیصا مجموع انسان میتونه حسنهانش رو و جلالت شعنش رو برسا استظهار بکن اما حالا این روایت به آنان حدیث مناهی ضعیفه یعنی ضعیف به این معنا باید مطاعد نشی که حساب بکنیم اینکه قبول قابل قبول بود الله فراد ایشون یک قبول فست سر بعض احر لغت دل کاهن و بعض احراب هیچ کدوم نیست نه اعراف هم <تصفيق> نه نه کارمه اینه که هیچ کدومش نیست اما جناب منجم ارز کردن در اصطلاح روالات کسانی بودن که ادعا میکردن که روابط نجوم و سیارات و بلدن و این روابط دلاز چی چیزایی میکنه این چند بار ارز کردن صاحب منجم در اصطلاح روالات غیر از منجم در زمان ماست منجم در زمان ما علم تنجیم علمه چی جابجایی نخوادید چرا؟ امم روابط نجوم میلیون ستاره ها شاید با فاصله دارن چی میشن نور شراره که این بیا که مدارش داره از این حرفا صحبت به تلسکوپ مریسکات نداره اما منجرب در اون زمان این نبوده که سر روزی موجب فرانت ستاره این شب این ساعت در اومد انسان باران میشه منجرب این بوده با دیدن ستاره احکام میکرد اینا رفته منجب منجرب بوده بعدش باعث پس این که به راف نداره کاهن البته کاهن احتمال داره با ارواح ما کاهن بیشتر کسانی بودن که با ارواح کلیه با قرقوزشون یا ارواه جزئیه ارتباط داشتن یا ملائکه رو تخریب میکردن یا مثلا ادعایشون شامل مثلا حرفای مثل کلیگویی هستن یا ازایای عبوی کلیگویی سواره میبینن اشی میبینن چه چیزی یه سری که گاهی اینطوری بوده اما عراف رو در اصطلاح خودشون ما به اصطلاح ما آسان جنگی میگن اینا عده ای ادعا میکردن منم خدا بزنم برز اینا رو مثلا جنگی هست رو میبینیم او رو الان رو, رو میبینیم می می می برحال این اینها ادعاشون این بود که ما برزدیم ازین جنگی رو میبینیم که در وقت عرب رعی میگن ره همزه یا به تشریف را یا رعی یون. رعی یعنی جنی که رؤیت می شده در این آقا و خرابش ارداخ مردینه اصل حرافینه دراتند نه کاهن نه مناجیه در کتاب خصال البته این حدیث با اینکه ضعیفه حدیث شو ابن واقع صدوق در کتاب من لا هزار آموزه یعنی در تنقید خودش از کرد سروش رو که صدوق اعتمادش بر احادیث مجموعی شواهد بوده یکیش هم متنش قابل قبول بوده یکی مشر خن یکی که حالا من دیواو بر روی شاهری که داشته حدیث قبول داشته. یا اگر هم قبول نداشته به استال در حدی بوده که مثلا اجمالا بیارشش. میگن یعنی یه نکات فنی اینجا هست که ما هم توضیح رو به طولانی میشه اینشال رو وقتی دیگه. اما در کتاب خصال خودش انا عبیه که ص پدر هم سرد معدله از عجله ازاب درنی قبول نید، یکی از مزورگان بغداد به یکی از آثار آس... مهم آثار ابن نری عمر ان ابو نذیر ابن ابي ایجاد درست است احتمالاً این رو از کتاب ابن نری عمر گرفته هر علی بن ابي حمزه ابن ابي عمر جدیداً از علی بن ابي حمزه نقل کرده علی بن ابي حمزه برادر معروف درس ما ضعف از و بعضی گسه کذابه تا حال ابن نری عمر ایشون نروی انا علی بصیر انا ابي عبد علیه السلام قال من فقط این در دین و اون تو قیافه قال ما او البته این همین درست باشه چون قافه جمع جنئه قایسه چی بوده این علم قیافه ای که چییش میاد تیزون هیچ اسم این علم قیافهی که الان ما داریم این مراد نیست در قیافه در اون زمان علم قیافهی که علام هست راجب خصوصیات بدر مثل عبو اگر اینطور باشه این پیشانی اینجور باشه دمام اینجور باشه لب. علمی هست که نمیشتن زیاد کتاب این علم زیاد نمیشت این قیافهی که در اون زمان بوده یک نوع به اصطلاف بیشتر روی الهاق نصر بوده چون ارز کردن گاه آقایی چه خیلی چه چهره روشن و پشنگ اینها چه سر بس سیا در نیومده یا مثلا هیچ چیز دیگه در نیومده اینا می اومدن شوهر میکردن که نکنیم بچه این نباشه عارف اینجور اثر سازه شبیه که ما امروز چی میشینیم سیاه پشناست نه نه نه روان بدن نه نه نه نه بیایید از اینجا ها خارج هستی خیاب خایف در زمان کارشی نیبود اشتباه ناشه از در این خیابهیست که علم خیابه هست این ها رو با نیگر تشخیص میده که این بچه اینو هست یا نه مثلا خود زید رید ابن حارسه حارسه خب جزو ملوک بوده بین شام و بین مدینه قصان پسرش اثیر میشه در جنگ برزه میشه بعدم بعدم میرسه به پیهن بعد پدرش میاد که پادشاه آموزه میاد که سرش رو آزاد کنه پول میده برای که میگه نماز پدرم رو من نه میخوام خود آزاد خودش آزاد بود. زید گفتم نه منو کشونن کی واسه تو شما هم کار بود من پیش محمد میمونم خیلی حالت ناراحت میشه که پسرش بعد همونجا تو کربلا میشه دیگه اعلام کردن که پسر من نیست میگه آزاد نیست اون بیا پدرم منم بلند کشم من پسر منه لذتشون زید و محمد چون زید پسر پیغمبن هم بودم اون زیده محمد پسر, پسر خانده بز. تا این آلام ما خان محمد و ابا هده من دیگه بشروفتن زید یا زیده من هر دیگه هم نداشت ما خانم ابا هده من اون یک کنیزی داشتن حضر امام ام, ام زن حدشی بوده در آفریقا بوده پیغمبن یه این رو میدن به همین زید یا به یه مساله رسیده، اما مثلاً اوروبا یا یکی دیگه این اساس پسر زیده اساس به فسادی سن بود بیست مادرش یه مدلش هرسته. کردن که این فسادونی که یه روزی این گناهانی فسادی آفره. می‌دونیم یکی از ما که روزی اساس بازه خواهید بود، اون از زیر بیرون بود. یکی از اون قافه این پاها و زامن بذارین. اولت که پیمانده خوشحال شدم چون منافقه این رو بخواستن بگیر حالایه حاله قیافه کارش این بود اساس قیافه اون زمان اصطلاحاً اینه قلتو ترقافه قال ما قاید با انتی اتیه ها دنبال اینو نرو اخی این منشهش چی میشد؟ شود مثلا این بچه اون نیست این زد بازی هر برای بزرد فراش می اون منشه این بود و تل مایه بودون شیعن و قل مایقورونش اینجا قیل نوشته در کتاب خصال قل ما قل مایقورونش این الا کانه قریب همه مایقورون دقیق نیز سن این دیانه هایی که هم میگه مثلا دقیق نیز فقال از قیافت و فضلت و ننبوه زهبت ناس هینه بود سرنبی بعدم یک اصلی هست در بواد که بحث نجوم که بعضی از این قلوم حقه خود نجوم در حصلش حقه جواب شده بود. این یکی از اون زوالات عجیبه است که پیامبر امام فرمود که خود قیافه سر اصل حق بوده و اصولاً اینکه اشون هم بیا بوده، لکن وقتی که پیغمبر اکرم آموزش داد که مثلا شهادتی یک مرد شدند از طلابشان که نمگاه دلس، که نمتن، او نمگاه دلسند، بعد از این خیلی عجیبی داره چون زه و رو هست. زه به تنهایی نه رسک پیغمبر آمده که از برکات وجودی پیغمبر تمام این چیزها باطه شد دیگه جمع قیافه حالا احتمال داره که واقعا یک اثر تکمینی بوده احتمال داره به خاطر تشریف الوردالالفراش دیگه به قیافه عمل نکنیم از سالالله آقا محمد و آفیل